در اینجا قسمت نکبت بار یا تکان دهنده داستان شروع می شود و صحنه تغییر می کند. آدم ها هم تغییر می کنند. من البته هنوز حضور دارم اما از حالا به بعد به دلیل هایی که مجاز نیستم افشا کنم چنان زیرکانه تغییر قیافه دادم که حتی باهوش ترین خواننده در شناختن من شکست می خورد. ساعت در حدود ده و نیم شب در گفورت باواریا چندین هفته پس از روز پیروزی بود گروه بان دوم ناشناس در اتاق خود در طبقه سوم یک خانه غیر نظامی بود که در آن او و نه نفر از سربازان آمریکایی حتی پیش از اعلام پایان جنگ مستقر بودند. او روی یک صندلی تاشوی چوبی پشت یک میز تحریر کوچک و ظاهرا شلوغ نشسته بود و یک رمان جیبی که مدتی بود با زحمت زیاد مشغول خواندنش بود جلوی رویش باز بود. رمان دشوار نبود، بلکه نقص از خودش بود. هرچند چند رمان‌هایی که همه ماهه با پست ویژه می‌رسید ابتدا به دست افرادی می‌افتاد که در طبقه اول می‌نشستند ناشناس معمولا هر کتابی را که می‌خواست به اختیار خود انتخاب می‌کرد اما او جوانی بود که جنگ را با قوای ذهنی سالم به پایان نرسانده بود و بیش از یک ساعتی می‌شد که یک بند از کتاب را سه بار خوانده بود و حالا برگشته بود و هر جمله را سه بار می‌خواند ناگهان کتاب را بست بی آنکه جایی را که خوانده بود نشان کند نور قوی و خیره کننده لامپ بدون حباب بالای میز چشمهایش را زد و او برای لحظه‌ای آنها را باد از پوشاند سیگاری از پاکت سیگار بیرون آورد و با انگشتایی که آرام و بی‌وقفه می‌لرزید روشن کرد روی صندلی اندکی به عقب پشت داد و سیگار را بیان آنکه تامی حس کند پک زد هفتهها بود آتش به آتش سیگار روشن می کرد. لسش با فشار جزئی زبان خونریزی کرد و به ندرت دست از آن بر برمی‌داشت. این کار برایش به صورت یک بازی درآمده بود که گاهی تا یک ساعت هم طول میکشید لحظهای به سیگار کشیدن و خون آوردن لسش پرداخت. سپس ناگهان به گونه‌ای آشنا و مثل همیشه بدون مقدمه فکر که احساس می کندند از جای خود بیرون میآید و مثل باری که درون قفسه‌ای در بالای سر به جای بند نباشد تکان تکان میخورد به سرعت دست به کاری زد که هفته ها بود برای مهار کردن امور انجام میداد دستهایش را روی شقیقه هایش گذاشت و فشار داد لحظه به همین حال باقی ماند موهای سرش بلند و کسیف بود. در طول دو هفته اقامت در بیمارستان ماین فرانکفورت سه چهار بار سرش را شسته بود اما راه طولانی و پرگرد و خاک گفورت را که با جیب پیموده بود دوباره کسیف شده بود سرجوخ زه که او را از بیمارستان آورده بود هنوز هم جیب را مثل زمان جنگ میرند و شیشه جلو را رو روی کاپوت میخواباند خواه آتش بس بود خواه نبود هزارها سرباز جدید آلمان را پر کرده بود سرجوخ خزه با شیشه جلو خابیده و آماده جنگ تن به تن جیب میراند تا نشان دهد که با آن سرواز تفاوت دارد و یکی از آن سربازان بی پدر و مادر تازه نفسی نیست که در عملیات نظامی اروپا شرکت کردند ناشناس دستهایش را که از روی شقیقه ها برداشت به سطح میز تحریر خیره شد میز انباشته از دست کم 20 سی نامه و پنشش بسته پستی باز نشده بود که همه به نشانی او فرستاده شده بود. دستش را دراز کرده از پشت خرط و ها کتابی را برداشت که به دیوار تکیه داشت. کتاب نوشته گوبلز بود با عنوان دوران شکومند. کتاب از آن دختر سی و ساله و مجرد ای بود که تا چند هفته پیش توی این خانه زندگی می کردند. دختر مقامی پایین در حزب نازی داشت اما آن اندازه همیت داشت که مطابق مقررات ارتش نامش در فهرست دستگیرشوندگان بیاید ناشناس خودش او را دستگیر کرده بود حالا در طول آن روز که از بیمارستان برگشته بود بار سوم بود که کتاب زن را باز میکرد و دست خط کوتاه صفحه اول را میخواند. واژه‌ها با مرکب به زبان آلمانی با حروف ریز و به خطی بود که نومیدانه سعی شده بود صادقانه باشد عبارت بود از خداوندا زندگی جهنم است چیزی از این جمله دستگیر آدم نمیشد. این جمله بر سفیدی کاغذ و نیز در آن آرامش کسالت بار اتاق حکم اتهامی بیچون و چرا و حتی همیشگی را داشت ناشناس چندین دقیقه به صفحه کاغذ خیره شد و سعی کرد با همه هایی که داشت تحت تأثیر قرار نگیرد. سپس با علاقه‌ای که هفته‌ها میشد کاری را انجام نداده بود، تحمدادی برداشت و زیر دستخط به انگلیسی نوشت: پدران و مادران وقتی فکر می‌کنم جهنم چیست، به این نتیجه می‌رسم که جهنم رنج موجودی است که توان دوست داشتن ندارد. میخواست زیر نوشته نام داستایفسکی را بنویسد، اما وقتی دید که کلمه هایی که نوشته همه ناخاناست، از ترس را لرزید. این بود که کتاب را بست. به سرعت چیز دیگری را از روی میز برداشت. نامهای بود از برادر بزرگش از شهر آلبانی. این نامه حتی پیش از آن که در بیمارستان بستری شود روی میزش بود. نامه را باز کرد سرسری تصمیم گرفت آن را تا انتها بخواند اما فقط نیمی از صفحه اول را خواند و وقتی به اینجا رسید حالا که این جنگ عالی تمام شده و تو احتمالاً در آنجا وقت زیادی داری خوب است برای بچه ها یک جفت سرنیزه یا صلیب شکسته بفرستی نامه را پاره کرد ریزه‌های آن را توی سبد ریخت و به آنها خیره شد متوجه شد که لای نام عکسی بوده که آن را ندیده است پاهای کسی را که جایی روی چمن ایستاده بود تشخیص داد. دستهایش را رو روی میز گذاشت و سرش را رو روی آنها قرار داد. از فرق سر تا نوک پایش درد می کرد. دردگویی یک پارچه بود. او کما بیش به درخت نوئلی می ماند که چراخهایش را به دنبال هم بسته باشند. به طوری که اگر یکی از آنها می سوخت، دیگر همه خاموش می شود.